حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هوادارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم اشوا که دل به سبزه پید توی دنیا از اووج موج شادی چا فردا و قدا دگاه شدهت به سبز پیچید توی دنیا از اووج موج شادی تا فردا سلام علیکم حال احوالتون چطوره من فرشد منافی اینجو رادیو پاسوردی شماره 943 روز یک شنبه 15 آذر 1394 چه خبره کجا ها این چه میکنین سلام من تو خیابونم الان داره برف میاد خیلی دلم گرفت <تصفيق> ای با برف به این خوبی دلگیری نداره که بعد میخندی آخرش بالاخره خنده است گریه است حالا کجاها برف اومده؟ تهرانی ها رو که میدونن بالاخره امروز اولین برف پاییزی رو دیدن چشمتون روشن به بچه چه برف بازی میکنن بح دشورشی بح یه چه اولین برف پاییزو چه هوایی چه سرمویی آقا این برفه بشینه بری تو خیابون یه چهار تا شات ویسکی بزنی آخ، آخ، گرم آخ. بشی با کله بری تو برف آخ،, آخ حالی بکنی نیما از تهران آقا موازب باش نیما جون دیگه بیشتر از چهار تا شات نزنی دیگه وقت بجین که با کله بری تو برف با کله میری تو جوب و اینا کارد از خودت بری حالا چیزی هم نشسته یا نه اونقدر یست بشه باش آدم برفی درست کرد نیست عیب ندار حالا شاید بشه. ولی اینا رو ولش تیپ پا رو بگو آقا اووف همه زمسونی تور کلا به سر دستکش به دست پالتو کاپشن شال گردن به به آقا خداییش این برف یعنی عجب نعمت ها خیلی دوست داشتنی و خواستنیه به به نمیدونم چرا قد چرا وقتی کمی بالا قلب من آروم نداره سکی میشی یه یا به اما امروز می‌خوایم در مورد تاثیر مدرنیسم روی روابط زن و شوهر و زندگی‌های مشترک صحبت کنیم به این بهونه گوریزی بزنیم به دنیای قدیم ببینیم این مدرنیسم چقدر تونسته به داخل خونه‌ها نفوذ کنه و مسائل بنیادینی مثل ناموس و اندرونی و بیرونی و روابط زن و شوهری رو تحت تاثیر قرار بده. پس یه سلام مخصوص داریم همین اول برنامه خدمت اون زن و شوهرایی که قبل از اینکه زن و شوهر باشند با هم رفیقان و توی همه چیز همه کار کنار هم و کارهای خونه رو زنونه نکردن و آره با اون دوره گذشت الان دیگه دنیا عوض شده کسی که نتونه خودش رو سازگار کنه با دنیای جدید به سرنوشتی بهتر از دایناسورها دوچار نمیشه سامی تو هم حواست باشه ها تو هم حواست باشه و هر حال این برنامه مدرنیست راجع به رابطه با این هاس به دردت میخوره دیگه برای برنامه امروز به درد تو هم می‌خوره امروز فردا قرار زن بگیری هر حال بعد این برنامه قشنگ گوش کنی به گوش جان نیوش کنی ببینی چی کارا باید بکنی البته بگم سامی از من و جلال و شهرام و شهرامی اینا خیلی مدرنتره برحال هرچی نباشه ناسلامتی فاغانسه بزرگ شده دیگه برحال گروپاییه برو بریم سامی جان <تصفيق> تکنولوژی هایی که به نظر من به تفاقرات خیلی درسته و, و خیلی اوپن ماین کرده مم. به نظر من فیسبوک چون خیلی راحت اکس همونو میداریم روی والمون میمینند می ایش مشکلی هم نداریم ولی خب اگه در ایشتر سه هفتاد یه مفرد یه خانمی عکسش پرش میشود و خودش فاتح خودشون میخوندیگه آخر دونش بود بیچار و خب الانجوری نیست تو اکثر بدون رو صری، با دور صری اپرا پاس می‌کنی مشکل نداریم. بعضی ما زمره این تکنولوژی زمان رضا شاه بود. بیچاره که بدبختی نمیکشید و مردم کار رو انجام میدادن اون فقط می‌نشست نظارت می‌کرد. اگه زمان رضا شاه فیسبوک اومده بود که به جای صفحه آزادی یواشکی صفحه مثلا چادر چاغچورای را می‌افتاد. چون همین الان بی جابی ممنوعه، اون موقع با ممنوع بود. ولی با مزه استا. فکر کن. نه فکر کن اون موقع مثلا زنای روبنده و چادری مثلا اکساشونو توی خیابونه ها و دشت و طبیعت و این برونور مثلا بذارم به وضعیت کشف هجاب زورکی اعتراض کنن چی بامزه می شد اما خانم آقایون ما همه می دونیم که عقلیت های دینی و مذهبی توی ایران مشکلات زیادی دارن ولی ما تا حالا فکر میکردیم اون دینهایی که تو قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شدن دیگه حالا خیلی تو وضعیت بدی نیستن ولی وقتی این سخنان گوهربار حاج آقا وحید خراسانی رو شنیدیم رسما منهدم شدیم مثلا اگر این قرآن نبود به حکم تورات و انجیلی که الان هست ای سبن بریم ولد آخه این چه حرفی آخه البته ما نفهمیدیم اصولا رابطه اینا به هم چی بود چون سبد مریم سالها قبل از قران بدونی یا اومده قران بعدا اومده حالا اینا رو بگذریم ولی با از است حضرت آیت حتی یادش میره که داره نسبت حرامزاده بلقوه بودن رو به پیامبر میلیارده آدم میده یعنی آدم متحیر میمونه که در قسمت عذاب روان این عزیزان به جای اون چیزایی که بعد باشه چیه دقیقاً البته آجاقیشا خوشونه اساسی هم در بیانیه برای پاپ میکشن اینجا ای پاپ وامونده که سکوت میکنی عرضه داری جواب اینا بدی جان پاپ وامونده؟ یعنی چی آقا به پاپ میگی؟ یعنی الان خوبه مثلا پاپم پاپ هم بیاد به شما بگی آی الله کج مونده؟ بله برحال چی بگم والا دیگه خوبه دیگه بعد ما میگیم چرا بعضی از مردم رعایت نمیکنن، مؤدب نیستن یا چه میدونم به هم توهین میکنن، با طرف ته ته ته ته ته عالم ربانیت واس خودش. داره واسه یه شخصیت دینی دیگه یه جوری میگه و نشون میگشه انگار بچه مدرسه‌ایه، کموندو به پاپ بگه زنگ آخر کلیسا‌تون تعطیل شد، دم در وایسا. والا به خدا من دیگه هیچی نگم سنگین طرف، دیگه چیزی نمیگه. Oh, yes. آش جون سینا هستم از سن حوزه بگم میکنم. چرا حچو عمان بزنیم و اینقدر فکر کنیم بیا زمین بزن به آقای جنتی ببین چه چیزایی بیشتر متعجبش میکنه راجب زندگی الان ما قربونه خدا قربونت برم سینا جون بله ما خیلی پرسیده بودیم دیروز از شما گفتیم بهمون بگید اگه یکی از اجدادتون همین امروز مثلا از اون دنیا برگرده بخواد یه هفته باتون زندگی کنه چه چیزایی ممکنه باعث ناراحتی یا تعجبش بشه و اینها ایشون به حال به این جواب داده بودن آخه غزله که آقای جنتی از دوران اختراع تیرکمون سنگی تا قرن اتمو خودش حضور داشته بوده اما این تغییرات رو خب به تدریج خب اتفاق افتادن همه رو به چشم دیده دیگه اینه که دیگه چیزی متعجبش نمیکنه میدونیم ما دنبال کسی هستیم که این سیر تدریجی تغییرات رو ندیده باشه از اون دوران یه دفعه صاف برش داریم مثلا 200 سال پیش بگیریمش این دوران ولی چاشما نظر ایشون هم می‌پرسیم ببینیم چی میگن دیگه اما همونجور که گفتم از امروز خیلی از شهرامون برفی شدن و فردام این برف کم و بیش ادامه داره میگن شهر خوی امروز صبح دماش رسیده به 18 درجه زیر سف خیلی ها خیلی آقا بپوشونین تو رو خدا بذارین صدای چند تا از هموطنان برف زده ای آزربایجانی رو بشنبین همه خوشحالن خوشحالن از اینکه این که ای رحمت الهی دوباره میباره کوه هوای برفی؟ کوه الحمدلله خدا رو شکر. بفهم که الان دو سه روزه میباره چون گرفتیم خداییش ما. دو روزه که هوا خیلی سرد شده. بخاریا هم تو خونه جواب نمیده. در این برف بازی می‌کنیم. خب هوا سر نیست؟ چرا خیلی سرده؟ من تا حالا تو ورزقان هوای بنسردی ندیده بودم. آ نه سال‌ها ده بی سابقه ده بو سویو دو ای جانم تو بعضی از شهرهای اردبیل و کرمانشاه و بعضی شهرهای آزربایجان شرقی و غربی هم که امروز به خاطر برف بعضی از ها تعطیل شد و عشق و حال و صفا سیتی ای بابا آقا نکن بچه چرا دفتر مدادتو پرت میکنی بالا نگاه تمام ورق ورق شد مدرسه تعطیل میشه کلاً آموزش پرورش که منحل میشه که این بچه‌ها جو زدهن و تازه اونم معلوم نیست امروز بعضی از مدرسه‌ها امروز بوده فقط نه همه جا عجب بشین این سر درس و مشقتون آقا نه اصلا حرف من نشنیده بگیرین عجب یعنی منتظرن اینا نگاه که چیکار کرد دفتر مشقو ماری ناری ناری ماری که نه و اما بریم سراغ زندگی مشترک مدرن از هلیکوپتر به جای ماشین عروس تا هاپو و همستر به جای بچه بیانی شماره 943 بدانید و آگاه باشید که اگر چهل پنجاه سال پیش برای داشتن یک رابطه زناشوی خوب فقط به تفاهم و علاقه احتیاج بود الان برای داشتن یک رابطه ایدئال به تفاهم علاقه پول زیاد در که بالا توانایی ندیدن توانایی نشنیدن حمله بار تحمل قوم همسر مذاکره با شوهر، مکالمه با برادر زن و حدودن 750 فاکتور سفاکتور دیگر نیاز است تا در دوران پسان مدرنیته کسی به تواند یک رابطه خوب مدرن با دوام داشته باشد اما چه سود که خیلی از ما از نداشتن این 750 فاکتور سفاکتور رنج برندگانیم امز. از سختی رابطه های مدرن متحیر مانده برای اون قدیم ندیما که مدرنیزم پودرنیزم اقدران نشده بود دلشون تنگ شده آیه رادیو هست فرد ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده افتاده بود اینجوری رو صندلی رو با مام مریضام، صارم درد نمیکنه، و خوبه. الان یه دفعه شنگول شده. آه. اینو شهرام انتخاب کرده گذشته عینا قولا، عینا قولا. گرد. اما زمان های قدیم اگه یه دختری مثلا 20 سالش میشد شوهر نکرده بود سر زبونا میافتاد همین میگفتن حتما یه عیب و ایرادی داره دیگه گوشه خونه باباش مونده دیگه اینه که آقا دختر 13 14 15 سالش که دیگه میشد سری شوهرش میدادن که حرفا حدیث سرش نباشه کلا هم اون موقع زندگی خو خیلی ساده و همچین خطی بود دیگه زندگی یعنی زن و شوهر هر کدوم وظایف مشخصی داشتن تو زندگی زن تو خونه میپخت و میشست و می شیکام پوشیکم میذایید و مردم می میره سر کار و یه لقمه می آورد میآورد میریختو حلق زن بچه‌ش الان ولی دیگه خبرانی نیست اولا دختر اگه زیر سی و پنج سال ازدواج کنه همه دوربریاش فکر میکنن هول بوده مثلا یا میترسه شوهر گیرش نیاد و این حرفا بعد تو این دوره خدادروشک مردم همه آگاه شدن تن به اون تقسیم وظایف جنسیتی و تبعیض‌آمیز نمیدن که حالا زن بجونه تو خونه بچه داری کنه شوهر بر سر کار ای. میشه البته آگاه هم نشده باشن خب وقتی اجاره خونه سه میلیونی و قبض آب و برق 400 هزار تومانی بخوام بدن خود به خود آگاه میشن دیگه به این نجیم میرسن که فرقی بین زن و مرد نیست زن هم میتونه و باید با پا به پای مرد بر سر کار بچه چه این چیز هم که اصلا جایی تو زندگی مدرن نداره خیلی یعنی اصولا یه سری از انسانهای مدرن دیگه خودشون میدونن چون اینا دو بحران هویتن به پوچی زندگی واقع شدن برای همینم هم دیگه دلیلی نمیبینن انسان دیگه رو به این بیارن. اینه که زن شوهرهای مدرن خیلی دیگه دنبال این چیزا نیستن اگه زندگیشون مثلا اگه یک نباخ شده هم مثلا چیز میکنن یا هاپوی گربه ای همستری چیزی میارن به فرزندی قبول میکنن وقتی از سر کار و خسته و خراب میرسن خونه باشون بلوله این وضعیت خیلی از زن شوهرهای مدرن امروزیه بری غریب سلام چه خبر سلام سلام به همه گیر سرچی جان اول این صدای وحید قلیش در وازبان پیش و پیشین تیم پرسپولیس رو که به خاطر تصادق تو بیمارستان بستری شده و از همون جا یعنی از همون بیمارستان با سیمام و سنابه کرده رو گوش بدیم بعد دربارش توضیح میدن گوش کی نمیاد حال منه بپرسه من نمیخوام کیزی خرجام بده لاقل حال همدیگه رو بپرسیم چند سال با هم بودیم چرا براد یه مهندسی که تو شهرداری کار میکنه مهندس عمران اونجاست بیا قجر میوارسه منو بده ولی دوستان هیچکی سراغی هم, هم من نمیگیرن درس بشه درسم بادیه بله صدای وحید غلیچ رو شنیدیم در زبان پیشکسوت فوتبال فری با این همه پولی که تو فوتبال هست اون وقت باید بعضا شاهد اینجور صحنه هایی باشیم گوت فراج فرشید جان فعلا بعضی از بازی سر خرید اتومبیل های آنچنانی آخرین مدل میلیاردی رقابت دارم به گفته خود ویده دلیش باید یه مهندس شهرداری که اونم غیر فوتبالیه به طور اتفاقی تو رسانه ها متوجه این موضوع شده باید بیاد حضیمه بیمارستان اون رو تقبل کنه بازم به غیرت این مهندس شهرداری دیگه چه خبرفری برس؟ هر هفته پیش پرشید تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد واقعا گر کاشتند بحب. اما موقع بازگشت در تیمشون به ایران بعضی از بازیکن ها از این تیم گله داشتن بعضی از بازیکنان ها این تیم انتقاد داشتن که در حددیگه تیم قهرمان جهان بهشون توجه نشده و با زبون بیزبونی جورایی گفتن پداش قهرمانی جهان چی شد؟ بله من واقعا اینجا از تیم های بانووان و البته الان تیم عزیز میخوام میخوامقدر نرم تو دنیا مقام به دست بیارن با این فدراسیون فوتبال چه گناهی کرده بعد غغ رو شما رو بشنواقعه بله ولش کنم دیگه چه خبر در ورزشهایی دیگه یه خبرامو سرچی که یکی از بازیکنای لیگ برتر فوتبال تو ساک ورزشیش همیشه با خودش اسلحه، اسلحه گل هم می‌کنه. البته حال می‌خاسته از همبازیاش پنهان کنه که اونا دیدن و ماجرا رو یا خدا، حالا کجا معلومه تو زمین با خودش نبره اسلحهشو. خب آخه اونجا که فکتشو نمی‌تونه ببره. بلاخره نمی‌دونم تو جورابی، شورت ورزشی جای قایم میکنه بعد دیگه کی جرأت داره بره تو از بگیره. با اسلحه گرم هم داور یا پناتی یا شلیت دایش ورزشی هم سلامتی داره زهور میکنه اینم میشه گفت دایش ورزشی بهش ممنونم از ذات فری ورز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگهت شما سوال کردیم بهمون به بگید اگه یکی از اجدادتون همین امروز از اون دنیا برگرده بخواد یه هفته باهاتون زندگی کنه چه چیزایی ممکنه باعث ناراحتی یا اصلا باعث تعجبش بشه مثلا گفتیم آلودگی و سر و صدا و ازدحام و ترافیک فکر بیشتر شاکیش میکنه یا عادی شدن رابطه بین زن و مرد شاید مثلا سر و شکل و, پیپ و مثلا فشار خونش بره بالا یا مثلا با موزیکایی که شما گوش میکنین یا غذاهایی که می‌خورین فیلمایی که می‌بینین می‌تونه ارتباط برقرار کنه یا سه بهش بگین یه ساعته میتونه بره مشهد برای زیارت به نظرتون سوار هاپیما میشه اصلا راستی از این که ببینه شما هنوز مجردین ازدواج نکردین فکر کنین چه فکری میکنه پیش خودش نه به زور فکر کنم عقدتون میکنه آقا این هفته یک از اجدادتون رو به خونه دعوت کنین برامون از مشکلات و درد سرهایی بگین که این مهمون عزیز در دنیای مدرن باش میشه. عاشقی جون سلام به نظر من مدلین خیلی چیز خوبیه بله. و در مورد اینکه اجداد من بکام برگردن بیان کلی هم حال میکنن کلی صفو میکنن ارتباطات که همه تصویری شده مسافرت ها که همه سریع شده بهترین ماشینا چی بود اون موقع دون پیکان قورازه بعد سوار میشدن بله. اینا هم که همه اهل کوی الهق اشغال بودن سوار الاغ میشدن شیش دور طول میکشید تا میرسیدن 2500 متر بالای کوه الان سوار لند کروز میشن تا فاصله نیم صد میرسن بالای کوه اشغالشونو میکنن ما هم که به خاطر یه دونه تلفن 2000 دو زدن حیرون سالگردون بودیم اون موقع دیگه خود میدونی ماجرای تلفن دو یارا رو به نظر من اگر بخوام برگردم بیان اجداد من کلی اشغال میکنن کلی هم میکنن هیچی هم آزارشون نمیده این دودو این دم دمت گم فرشی جون قربونت برم من قربونت برم ممنون فقط ما گفتیم اجدادتون رو احضار کنین ها شما این چیزایی که گفتین مال همین یه نسل قبله مثلا مال پدر مادرای ماست دیگه یعنی زمان اجداد ما اصلا پیکان قرازه کجا اصلا پیکان نبود همون اصباقل آقایینا بود احتمالا دوزاری و تلفن عمومی اصلا کجا بود تلفنی نبودن اصلا خب مرسی از تماستون سلام امارو هم خدمت اجدادتون برسونین اونایی که دعوتشون کردین خیلی ما چشم کنین از طرف ما خوشحالیم که از دیدن این همه تغییرات خوشحالم با لند کروز میرن حال چون میبرن به احب عبدال توی اینستاگرام گفته عبدالکی ایچ گفته بقیه چیزها رو نمیدونن ولی اگه بیانه این ماشینهای طولید ایران رو ببینن به همون میخندن شما این مقایسه بین پیکان 48 تو پارس 94 کنی متوجه میشی بلا همه گیر دادن کلا امروز به پیکان دیگه اینجوری خوبه دیگه زیاد از گذر زمان شکه نمیشن اصن کمپانی‌های سازی برای همین سعی میکنن مثلا ظاهر ماشین ها رو تغییر ندن یا مثلا خیلی مثلا پیشرفتشون نکنه مدرنشون نکنن این فکر روجی میکنن که به حال ما قرار برنامه داشته باشیم راجع به مدرنیسم و بعد از شما بخوایم که اجدادتون رو دعوت کنیم بیان به این دنیا برای اینکه اونا احساس غریبی نکنن همه اینا به هم پیوسته است یعنی اینا هماهنگ شده است مثلاً شما نگران نباشین بعد لیلی جک روا گفته روابط با نامحرم خانم چرا حرف درست یعنی چی چه روابطی علیکی جد بزرگو بدبین میکنی خو ماشاءالله همه با تقوا و عفیف و عفیف هستن تو خانواده جد بزرگوار ببخشید تو رو خدا ایشون اشتباه کرد اشتباه کرد معذرت خواهی کن سلام در مورد سالی هفته میخواستم بهتون بگم ما جزیل قشقایی هستیم و پدر بزرگ بانده. من در طول عمر خود با انگلیسی ها جنگیده تو جنوب کشور و حالا پسراموی من زن انگلیسی گرفته آف، آف، من آف، آف، فکر کنم بسیار براش جالب باشه و عجیب باشه که یه اون با انگلیسی ها جنگیده و حالا عروسش یه انگلیسیه ساسان هستم از لندن حسه نباشی ساسان جان چیز کن شما این خیلی آقا این خیلی ناجوره میگم شما نگیم بهشون طرف انگلیسیه خوب چه میدون چی کار دارین باه بگی بگین سعودی بگین دانمارک دانمارک هم چیزه چیزه آره گل محمدیون چه میدونم لهستانیه بگین چکی هستن والله میگم یه وقت بلای سر دختر مردم نره بگی انگلیس دشمنه کلا سیم توی فیسبوک گفته اگه جد من برمیگشت مطمنا خیلی تأسف میخورد از این مدرنیسمی که باعث شده ها اینقدر تنها بشن ولی خودشون ندونن اینکه تمام ارتباط آدما شده توی دنیای مجازی و بگه یادش بخیر خونه های قدیمی که همه زیر سقفش با مهر جمع میشدن و یاور هم بودن و اینجوری که شما گفتی جدت که چی دیگه ما هم که اون دورا ندیدیم دلمون تنگ شد برای اون روزا دیگه واقعا یادش بخیر رها توی فیسبوک گفته به نظر من بیشتر به گوشی و تبلت هامون گیر میداد کمی هم لباس هامون اینم درسته حالا شانس بیاری نخواد مثلا بگرده توی گوشی و تبلتت ببینه چی داری و همش سرش تو اونه و چی, چی کار داری میکنی و یهنم یعنی تبلت و گوشی خورد میکرد تو سر همم خدا اینستاگرام راشومون چیز گفته شعر گفته گفته آمد پدر پدر بزرگ جدم از قبر برون زند همین لبخندم خوشحال که برگشته پس از 100 سال گفته ای نوه نوه تشکرمندم گفت از چه مرا برون کشیده ای از قبرم هر چند که من بابت آن خرسندم گفتم پدر پدر بزرگ ای جد جان من هم به شما بسی ارادت ارادتمندم از قبر کشیده پس تو را پس فردا از قبر کشیده پس تو را پس فردا. من چیکاره بیدم بنده خودم بندم گفتند بیا ببین عجایب اینجا هر ریکشن تو بند هر ریکشن تو بنده گزارشمندم گفتش که بیا بعد صد و اندی سال دلغک نبودم اونم شدم دل بندم با سر بروم به قعر قبرم بهتر باید بدونی من به اصول پایبندم دیگر نکشی مرا بیرون ای ابله فکر کردی که من احمق و دلغک فرشید ببین که من کشیدم بیرون اموات همکاری نکنن شرمندم دشمند <تصحنت> چرمنده باشه آقا این حرفا چه دست شادر نکن بلاخره سن سالی ازشون گذشته یه مقدارم تندخو هستنیشون یه خودم خستن دیگه من عوض میخوام من عوض میخوام از پدر پدر بزرگی ش چی جان فکر کن مثلا دسطی یه پارتی مختلط باشی تو خونتون آخ، آخ، بعد یه اون پدر و برگرده برگرده ببینه آخ، آخ. بگی آخ. پسا اینجا چه شده است <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد بگی یه چی پدر و نه همه جاست فرندن بعد اومده اینجا داریم پارتی میشه اصلا فکر کن چی میشه یه لحظه فکر کن پیش خود دوی چه اتفاق میافته برای اون بند خودا <تصفيق> جاست فرند و پارتی و مشروب و آه من بیشتر نگرانم چه اتفاق برای تو میفته اولتا شاید هم جد بزرگ اون فضا رو ببینه یا شروع کنه برگدنز زدن مثلا اون وسط توی اون فضا و شرایط واقعا هیچ بعید نیست ها بعدم مثلا با همون لحنش بگی که مثلا بگه یه دونه از این جاست فرنت ها هم برای من جور کنیه مثلا توی این مایه ها اسم این این یه حرف میاد این شاددی نه ای اسم دیگه داشت یه چیز دیگه بود عادی کاظمی بازی می‌کرد تقضام خوب بازی میکرد ولی اسم این تیپش و اسم کاراکترش یادم رفت خلاص این هفته بهمون بگید که دعوت کنید دیگه از یکی از اجداد دعوت کنید ببینید که با این فضای جدید و با این مدرنیته و مدرنیسمی که شما دارید باش زندگی میکنید چجوریه براشون عادیه تعجب میکنن میترسن ناراحت میشن چجوریه اگر خواستید با در تماس باشید کجا نوشتم اینا رو میگه اگر خواستید با همون در تماس باشید اینا کجایی سعید مرسا الی بیاین دیگه بابا این تلفانه رو همش گم میکنم یکی بیاد بخونه اینا پس فردا رادیو فردا دات کام ایمیل امونه چهارصد بیست ششصد سهصد و یک پنجاه و دوستف شماره اس ماست و به بزرگتون که شماره وایبر واتس تلگرام ما دوستف در فیسبوک گوگل پلاس اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون پیام بذارید برامون کامنت بذارید در اپلیکیشن راژیو فردا در آی او اونایی که آی او ایس دارن آیفون یا آی پد دارد میتونید دانلود کنید اپلیکیشن راژیو فردا رو و به هم برنامه رو بشنوید یا دانلود بکنید هم به صورت زنده بشنوید و هم میتونید برامون صداهاتون رو بفرستید رکورد کنید و بفرستید های ما هم دوسف 420, 22, 11, 24, 133 و و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دوسف 420 226 21 79 39 مثل برگی تنس پرده به بادم ساده بودم دل به دست تو دادم تعم شیرینه نگاه دروب Ki ha mo beya. دوستان دیروز توی خبره اومده بود که وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده برای اینکه زودتر این قالیه سوریه تموم بشه دیگه خیلی حساسیتی رو این که بگن بشار الاسد باید همین الان و قبل از دوره انتقالی بر کنار بشه نداره کلا مشکلات مردم سوریه و البته کشیده شدن بحران تا اروپا و آمریکا همه را انقدر ترسونده دیگه میخوان این قده ترسناک برداشته بشه از اون منطقه بعد وسط این غیلوغال آقای دکتر ولایتی یار شفیق معظمله اومده دیشب تو شبکه سه گفته که آقای بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست به دلیل اینکه توسط مردم سوریه انتخاب شده برای دوره ریاست جمهوری برا در ولایتی رفیق آقای متخصص اطفال ای رکورد داره وزارت خارجه در ایران با برای چی آقا بشار آزاد خط قرمز شما داداشتونه شوهرخارتونه با هم مدرسه رفتین با هم رفاقت کردین چی بوده بین شما انقدر ناموسی بین بشار آزاد چسبید داخل بعد فرمودید انتخاب مردم بوده ایشون خب الان مردمی که همه زندگیشون از دست دادن آوار کو بیابون شدن از دست دادن اینا خط قرمز شما نیستن یعنی بشار یه طرف مردم هم یه طرف نظر خاصی ندارید شما در این ماره؟ ایران بنا ندارد که چه در میدان جنگ، چه در میدان سیاست، پشت آقای دکتر بشار اسد رو خالی بکن نخیر، یه پاداره کارش نمیشه کرد. ظاهرا اینجوری که بشار اسد نقش ناموس نظام مقدس رو داره ایفا میکنه یه روزی خودش هم به از قدرت بره کنار اینا نمیذارن این یعنی کمدی، کومید... ها ماجرا. مونتو از اون کمدیایی که بعد نشست باش، های های گریه کرد. ای بابا کلاً خر ما از کُرگی فاقد هر گونه دم بود میگی نه می بیو با سلام 23.30 یک شنبه شب را با زمن کف کردن از تحتیل شدن مدارس و افضایش اشتارهای ایمنی در پایان بارش سنگین برف در برخی نقاط کشور با مروری بر سرخط مهمترین خبرهابی امروز و امشب آغاز می نماونیم وزیر اقتصاد مبری بر یک رقمی شدن نرخ تورم در یک ماه آینده و نظر گروه های مردمی که ما آخرش نفهمیدیم این در 40% میشه قیمت ها گرون یه رقمی هم که میشه همونه پس شما رو خیلی ازجاد نکنیم قط شدن یا نزدیک به 3 میلیون نفر دیگر و سوال کابشناسان از حسن روحانی و تیم اقتصادیش که شما ظاهرا برای انتخابات بعدی به رأی آوردن علاقه ندارید نه؟ و شدن سقف مسکن مهر ساخته شده در شهر بابل به عنوان یکی از یادگارها دوران دکتر احمدی نژاد به علت وزش باد و پیشبینی ناظران که الان این سقف کنده شدن نشونه ایشون بدی میگه مشکل مملکت ما الان اینه مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلی بلی سلام وزیر اولون به خورنگاران گفت هیچ دانشگاهی مجووز برگزاری اردوهای مختلف دانشگی را ندارد برای برگذارش ها ممنوعیت اردوهای دانشگی مختلف از وقتی شدید تر شد که مقام معظم رهبری به دفعات از برگزاری این اردوها انتقاد کرده برگزاری آنها را مقایر با شعونات کشور در همین راستا یکی از فعالان عرصه مبارده و اردوهای مختلط دانشجویی به خبرنگار ما گفت یکی از بزرگترین مفصده های داخل کشور در همین اردوهای دانشجویی اتفاق می و حتی در مواردی مشاهده شده در این اردوها دختر و پسر در برابر چشم هم غذا می خورند و حتی گاهی با هم به مسائل مشترکی می و کرد آوری کرد این این چیزهای خواب از چشم مقام معظم رهبری رو بوده و دانشگاه ها اگر میخواهند ایشان بهتر بخوابند برگزاری بر این اردوها را باید هرچه زودتر متوقف کنند پایان مشروع اخبار کیلومتر 35. در بله، خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جاب هستیم تا ما رو در جریان جرگاملی... آخرین اخبار انتظامی قرار بله. سنگ جون ما به گوشیم دیگه. بله بنده بله؟ هم سلام عرض می کنم ما در خدمت شما هموطنانی عزیز هستم. ای سرنگ اخیراً نیروی بله. انتظامی اطلاعیه داده ظاهرینی که از عراق برمیگردن بله. اسباب بازیایی رو که اونجا خریدن برن به پلیس تحویل بدن. چرا چی شده داره. با اسباب بازی بچه مردم چی کار داری شما؟ بله با عرض کنم م. که گزارش هایی رسید است که توی این خفت. اسباب بازی ها مواد خطرناک جاسازی شده است. به همین دلیل خواهی هست با بازیام خطرناک هستن این موادی خطرناک چی هستن سرنگ دیگه ببینید بی من خیلی واردی جزیات نمیشم ولی ای. در هر صورت این مواد میتوند مشکل زا شد برای مردمی عزیزمون اوبلو دیگه وا مواد منفجره بوده سرهنگ دیگه قرض کردم بنده واردی جزیات نمیشم حالا هی شما بپرس ای بابا حساب با نداری سرنگا نه آخه شما سرهنگ... ای... حالا برای شرابندگام عزیز بفرمایید که بله. چطور ماموران شما اسباب بازی خطرناک بله. رو از اسباب بازی غیر خطرناک تشخیص میدنن و ببین اینا مم. دیگه مهارت های تخصصیه است که بالاخره در معموریی پلیس وجود دارد برای آه. حفاظت از مردمی عزیزمون یعنی الان شما خودت با... هم تخصص داری دیگه با... تو این زمینه دیگه بالاخره با... بله دیگه ما هم برای ناال شدم به درجه سرهنگی سری داره ها رو در این زمینه گذردما خب به پس ما... حالا با اجازه نارزیج عزیز میخوایم یک آزمایش بله. در این بخش از برنااممه بیکوسی یک آزمایش انجام بدیم چه آزمایشی و... آقا جو آزمایشی نداریم می‌کونیم ما اینجان که چه... نه ببینید الان من چهار تا اسباب بازی رو اول اجازه‌ بدی اسباب لحظه. بازی برای چی چا خ... ا چ چه... چه... چه... کارایی میکنی شما آقا خب این عروسک باربی چی... دخترم این چی چی عزیزی من اینجا من یه دونه اینم عروسک بازی می‌کنم مواظب باش پای سرش نذید نه این دیگه فقط عروسک هستی یعنی چی آدیو علی ای این زر... ای بزرگی اینم یه جوگش بزرش... این جرس جرس من نمیفهمم شما خانوادگی همه اسباب بازی دارین تو این سن و سا؟ علی دیگه با. ما خانوادگی سن کودک درونمون خیلی فعالیتش زیاده ما مصری اصلی اینه که الان ای... تو دو تا از اینا من مواد خطرناک جاسازی کردم سرحنگ بله. شما برای ما پیداش کنید مواد خطرناک چی هست دیگه عنجب کارایی می‌کنی شما چمواد خطرناکی آقا جون؟ عرض کنم سرنگ جان خدمت توی ایک از اینا نیترات آمونیوم هست که بیتونه با یک اشاره بله. کلی ساختمونه بیاره پایین توی یکی دیگه هم از آ... چیز کردی آقای... تی این تی فعلیه جا ساز کردم که قابلیت اید... انفجاری خیلی شما... بالا داره دیگه میدینی دیگه تی این تی آقای میکروفونی واقعا شما داری واقعی میگی ها؟ شوخیاس ما داریم اینجا آزمایش این... می‌کنیم کار علمی انجام میدیم برای مردم شوخی چی این شو... بسم الله ببینم چه می‌کنی دیگه سر من آقای از شما دیوانه ای عقلت زاری من... شده است اینم وقت خطر ناگهان به ازا من ببین بزنم الان منفعه در میشد اینجا ها رفت سرنگ بگم یه بوم به ساعتی هم دادن من... بچه‌ها درست شدن بله؟ اولا بچ همین دوربر یه جای حساسی کردم این شما خونساز کن اول بعد پیداش کنی بعد خونساز کنی تا دیگه مردم در جریانی محلات هایی شما قرار داریم. <تصحیح> <تصحیح> شما باستان سری اینجوری و نمی نمیشه. مرکز مرکز اسرار مرکز اسرار یه وادزت تروریسم خون سازان سا یه وادف رسید بیاد دموگریت من من مرگ در مرکز حالا این چرا شروعش میکنی وای؟ آقای عزیز این جنگ زنگ خطر اینجا ترین جا کجا ازی ساخته باش تخلیه به اون چه آ اینجا زنگ خطر اینه با چای چاق کلی بازی در میاری تو آه چیزی آه نیست یه سری مواد ما... منفجره ساده است بوم خیلی بوم خیلی وقت نداره بیچونی حالا باد کنی مرتی منه شدی باد ببرن اگر خونه با این حالا خونسا کنی بیچونی حالا این رو هم آره دلیل چشم ما مختلفیه هرچی معمولی بودی آقا شو آقا جون نشستی چرا پاشم جاب چهار تا دنی بوم دیدیم ببین چی میگری باد داشت میکنه باد باد باد کجا الان میته اجازه این ساعتی آقا جون رطوبت میبینه با کل با اینا دستش داره خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا قدیما زن ناموس مرد بود وظیفه ذاتی شوهر این بود که این ناموس و چه به صورت سخت افزاری چه به صورت نرم افزاری از گزند نامحرم حفظ کنه یعنی علا بر این که جسم و بدن زن رو از نگاه نامحرم دور نگه داره نگهداره، به این باشه که نامحرم حتی اسم زنش هم متوجه نشه. چون اون قدیما اسم زن هم باعث یعنی تحریک غریبه ها می یعنی در این حد بود. اینه که مثلا اگه زن اسمش بدر و سادات بود، این اسم فقط مخصوص شوهرش بود. برای دیگران زن میشد منزل یا مثلا والدہغ مصطفی یا مثلا آقا وقتی میخواست خانمش رو صدا بزنه اسم پسر بزرگش رو یه پرده پایینتر تلفظ می‌کرد و میگفت خانمش میگفت بله آقا مثلا اینطور برای محافظت سخت افزاری هم را های مختلفی بود چادر و رو و اون چیزا به کنار خیلی از خونه های اندرونی و یه بیرونی داشتن که اندرونی جایی بود که اون پس پشت ها مثلا زنای خونه توش میپختن میشستن و میزایدن و اینا بیرونی هم معمولا جایی بود که آقای خونه مموناش دعوت میکرد میشستن در گل می گفتفتن گل میشنفتن جوون. این اوضاع زندگی های زن و شووهری خیلی قدیم قدیمما بود ولی الان کلا طرز فکر مردم. فرق کرده کردایی زمان قدیم به مردم می مثلا یه روزی میاد که همه خونه ها مثلا آشپز اوپن دارن مهمون از توی پذیرایی میتونه زن خونه رو در حال چای ریختن ببینه مردم اصلا چه میدونم یعنی همه می رو زنشون به مسائل بیناموسی و اینا یعنی فهم میکردن دارن براشون داستان الفیه شلفیه تعریف میکنن یعنی اینقدر طری کننده بیناموسی بود برشون الفی شلفیه اونایی که نمیدونم قدیم کتاب فارسیه در حال مضال شببه خیلی این هم فقط گفتم بدون. ولی خب امروز به برکت می میبینیم تا حدی اون بحث ناموس و ناموس بازی ایام قدیم کم رنگ شده اینه که یه تعداد زیادی از زنا امروز خب بیشتر از مردا برای خودشون برو بیا دارن میهمونی میرن مهمونی میدن هر چی میخوان میپوشن تو فیسبوک هم هر جور از خودشون میذارن تا زغالشون هم میاد لایک میزنه خلاصه به برکت مدرنیسم یه مقدار مردم تکامل یافته تر شدن تکنیکرانی ما از خودت آدمی است که می به چشم خود شاهد پیروزی باشن کامران ملک بوتی سلام سلام فرسی سلام همگی بزن بریم راستش اگه بخوام راجب فیلم هایی که تو گروه هنر و تجربه اکرام میشه هر شب ایچویه کدومو معرفی کنم ماشالا اینقدر زیادند که به همه نمیرسن یکی از فیلم هایی که تو این گروه در حال نمایش فیلمی به اسم زوب شدن پادشاه ساخته هوتن زنگنه که از استقال خوبی هم برخوردار بوده بخشی از صدای فیلم با هم بشنویم تا بعدا من بیشتر راجب عواملش بگم بشنویم میدونستم حالا اینو میگی. نه تو بق... تو بگو من چیکار کنم؟ من از شماستون بودم. از خونه من بفرمایید بیرون آقای کمالی. من بازم هم تأکید کرده بودم ایشو خانوم نیستن، نویسنده. من به هیچ ناشری تاله اجازه همکاری ندادم و نمیدم. اص همه بیشتر از من بود. دقیقاً دارم به رمان تادی میکنم. من حتی یه مادر بدبختم نداشتم. یعنی راستش چه حالم بدتر شده از دیدنه. اسم رمان چی؟ زوب شدنه پادشاه. زوب پادشاه. بله بخشی از صدای فیلم ذوب شدن پادشاه ساخته هوتن زنگنه رو شنیدیم بازیگرای فیلم کیا هستن کامرا به فیلم یه فیلم کم پرسوناج شهزاده کمالزاده فرشید نوابی لیلا زاره نسیم ادبی و فراخ نمتی بازیگراشن فیلم چند تا سالون بیشتر در اختیار نداره احتمالاً هم اکرانش تا هفته آینده بیشتر ادامه پیدا نمی‌کنه عجب کنسرتا که هنوز راه نیفتاده کامرا نه هنوز اینه اما تقریب از ده روز دیگه کنسلت داغ میشه اما امروز تو خبر اومده بود که فرید یزانفر که طرفدارای علی لحراسوی با نامش آشنا هستن چون آهنگسازو تنظیم کنند و رهبر ارکستر لحراسویه اعلام کرده که تصمیم داره خودش وارد و خواننده ها بشه و به زودی اولین آلبومشو منتشر میکنه اجالاتا فعلا یه آهنگ از آلبومشو منتشر کرده ببینه بازخوردش چیه بریم همین یه آهنگ رو بشنویم ببینیم بازخوردش چی الان بین مخاطبای ما فعلا تا فردا ممنونم ازد خداحافظ کامران عزیز تا فردا خود نگه up. قدیما جوون ها اینقدر مدرن بودن هر روز مدرن تارکین گوش میکردن <تصفيق> اینم یه مدل از مدرنیسم اون موقع اما از مدرنیسم توی زندگی مشترک و رابطه های زن و بگیم البته تو عروسی های ایرانی که خواله هر کاریش بکنی بازم در همه دوران ها و عصرها چشم همچشمی و زدن پوز فامیل و اصراف غذا و از اینجور حرف ها کولاک میکنه اما در عصر عروسی های مدرن آدم گویی وقتی چیزایی میشنوه به قول مادربزرگا عبادشون انقد گنده است با این چشای کوچیک نمیشه دیدشون ازن مثلا روایت داریم مستند درجه اول کاملا تایید شده از راوی مطمئن که عروسی بوده اطراف تهران تو باغ 700 800 عدد مهمون خیلی چیکام پیکان خوشگل مشکل تو مجلس همه چی معیا بعد یهو داد میزنن آی عروس تو ماد اومدن آی عروس تو اومدان همه هر میگردن به سمت ورودی مجلس که دو دسته گل تازه بش گفتره ببینن هر چی نگاه میکه هیچ یه یهو یکی میگه دارن از آسمون میان اون یکی میگه اون از آسمون اومد اون که اومد امام بود اینا امامزاده امن نیستن یعنی چی خلاص همینجوری بحث میکردن یا میبینن صدای হেলিকপ্টر همجوری میاد میاد بعد دو تا چت‌بات تلپی افتادن تو قایق یه قایق بزرگی وسط استخر باغ بود حالا اون دو تا باز کی بودن کماندوی آمریکایی نخه داعش نخه عروسماد خودمون بودن خاصه بودن خیلی مدرن و شیک و متفاوت بیان تو مجلس عروسیشون آخه به همین جذابی. حالا فقط یه سری سوال فنی پیش میاد که خب عروس خانم با اون لباس عروس و با اون تشکیلات و اینا چیجوری میتونه آقا چت بازی کنه؟ اون دامن که خودش میتونه نقش چتر رو ایفا کنه آقا. حالا بگذاریم که داماده عزیزم با کت چلوار و کراوات ان میلیونی و چتر و کلاه چت بازی خب بندز کافی مزهک میشه. خلاصه اینا رو گفتیم حواستون باشه این رفتین عروسی های یکی از این عروسی های مدرن و میدونم عروض دومات مثلا شلیک شدن به وسط مراسم یا از تو زمین یه دهود در اومدن اینا یه های درخت آویزون شدن بدونی همه اینا به خاطر مدرنیت هست یعنی به خاطر مدرنیسم و مایداری بیشتر تو مال قرص سردرد و روانپسشکو اینا نگردین اینجوریه Vale مودرن بودن اسمش فقط قشنگه شیرین دوست من که پزشکی الان دو ساله با یه مرد مدرن ازدواج کرده پیر شده تفلی یعنی از همون اول آشنایش اون شیرین شیفته یه نگاه مدرن این پسره شد که گفته بود کار بیرون زن و مرد نداره زنم همون قدشری که تو زندگی که مرد و از این حرفا شیرینم که اون موقع تازه معتب خودشو زده بود خوشحال از اینکه مرد زندگیشو پیدا کرده و مرده مثل این قدیمی‌ها نیست که بگه بشین تو خونه نرو سر کار سری عروسی کرد. حالا تو این دو سالی که با همن هر روز شیرین میگه فرهاد جان نمیخوای بری دنبال کار ایشون میفرمان ازیزم اینا که میگن مرد باید کار کنه خرجه خونه رو بده سنتی تو یعنی تو جراخه بهش گفتم شیرین اون وقت کارهای خونه چی؟ مثلا جاروگردگیری و آشپزی اینا میکنه دیگه؟ گفت نه بلد نیست خب که نخدا گفتم چه ساده ای تو؟ یعنی این دوست من دلش خوش زن مدرن بیرون کار میکنه حواسش نیست داره نقش مرد سنتی رو بازی میکنه در واقع نقش زن سنتی هم به عهده تازه آخه هم کل خرجی خونه با تو باشه هم تمام کارای تو خونه مگه بولدوزر زن خوب. روزنامه تفاهم به نقل از یکی از اقتصاددانان کشور تیتر زده بود که احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور یعنی اقتصاد ایران هر چقدر هم در بوده آقونز آغارت باشه خدای مریض که میشه خیلی واکلاس میشه فکر که ازت بپرسن اقتصادتون چشه؟ تو بگی هیچی بیماری هولندی داره خارجیه دیگه؟ روزنامه اطلاعات ترجمه مصاحبه روزنامه سفیر لبنان با محمد خاتمی رو با عکس ایشون چاب کرده و تیتر زده باید گفتگو کنیم کوپقدر خب شو که تکلیف مدیران روزنامه اطلاعات هم مشخص شود امیدوارم کار خوبی پیدا بشه براشون الان میگن تاکسی خطی خوب جواب میده ها برای بچه اطلاعات آره روزنامه جوان امروز با اشاره به استفاده از ماده خطرناک جوهر غند برای تولید نان توسط برخی نانوایان تیتر زده بود که سم جوهر غند دست پخت خبازها یعنی مردم ایران ثابت کردن یکی از مقاومترین گناه های انسانی هستند. چند وقت بگذره بدنشون با این سم جوهر غندم خودشو تطبیق میده اینه که اصلا جای نگره نیست اصلا نگره نباش. فرصتمون امروز هم به اتمام رسید. یه خبر چند سطری رو براتون میخونم بعدش دو کلمه حرف حساب و خداحافظی. خبر میگه هفته گذشته پسری چهار ساله به دلیل پارگی چانه به همراه مادرش به اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر اصفهان مراجعه میکند و به دنبال آن کادر اورژانس به صورت سرپایی چانه ای او را بخیه میزنند. اما پس از آن که مادر کودک میگوید توانایی پرداخت هزینه 150 هزار تومانی برای ترخیص فرزندش را ندارد با دستور مسئول کادر پزشکی پرستار بخیه پسر را می کشد و بیمار با خونریزی و پارگی چانه از بیمارستان خارج می شود به امید روزی که ماها هم رعایت صورتهای زخمی رو بکنیم و هم مهمتر از اون یادمون باشه که دلای شکسته به این راحتیا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 پس میکروفونو به دست من تو دهده ده بگم از این زمونه و از دلی که تک تک است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز اینم ندارم یه فکر بهته از جمونگی بگم که شده سمبل رشادت ایران برا شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند بطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست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 عمو مدنگهام شکسته خطدهامو نبی این خطدهام یه ترسل رو لبم این مرام مایه رت پای خسته چی بگم بگو از یه روح زخمی که باید یک تا بره تو قلب کوه سختی از روزایی که خط خوردن توی تخریب خبر از چه اجتماع رو به تخریب چی بگم